خرص کنم که امچه بنده مداری وقت کلاس بگیرم که مقای مدنی کشفردن ما اینجای محفل مستی داریم تقریبا دو سالی هست که تشکیل میشه هر دو شب و حاجب عدب پرد عدب فارسی هر کنم دای شانومه خوندیم جزای مصنبی خوندیم دای حافظ خوندیم به نظرم سعدی هم خوندیم ایستیم و محرص کنم که حالا موقع نظامی و طبیعی است که نمی که خمسه نظامی رو اونجا درست شد یه چیچه که رقبت شوق بیشتر دیشتر نسبتش باشه با آسانتر هم باشه در دوستان انتخاب کنین و از حق بکرد به داستانی رو انتخاب کردین داستان گمبر سیاه که تموم شد درست. شب پیش تموم شد و ما انشب برانه باید تعییم کنم بعد در هفته پیش گروهی گفتن که آقای غزل حافظ رو بود گفتن که نفر همون نظامی رو ادامه بده و از این حرف و تکلیز معلوم نشود اما ما فکر کنم حالا همون کار نظامی رو اگه ادامه کنیم بتر هست خنده داستان شب اول رو توی هفته کر بهرام جور هفته قصه خداه یکه بهرام دفتر پادشاهان هفته این رو بزن و کاخ براشون ساخت و نشون بنا داره کاخ خودشون و این کاخ رنگی داشتن و متناسب بودن با یکی از روزای هفته و متناسب با اون اقلیمی که اون خانوم از اینجا آمده بعد هر شب، هر هفته شب محصول اینجا بهرام میرفت پیش اون چه آزاز که نوبتش بود دو شنده بود، سه بود و بعد اون بانو دفعه اولی که بهرام رفت بود بشه. او یه قصه میده قصه جالب دلپذی بعدم آخرش هم طور این قصه شد که با اون رنگ اون گمبت تماس پشکه بود و که اون زنگ یه تا این این مجموعه، قصه شب اوله داختان گنباد سیاه داستان پادشاه است که یه چند روزی نافدید شد و وقتی برگشت از سرتافال واسه سیاه هست خب کسی این که پادشاه که نمیتونه خواستی که خوربان چنه که خور شد که سیاه هست پادشاه هم ظاهران دارش میخواستی بگیرم بالاخره یه روز یه که محرمش میده و گوستش میگشته اونا شروعی که پاچه ها به کردن که فلک با من چه بازی کرده چه دوت با من بد کرده چنین کرده کرده و و چطور میشه کسی چنین بازی بکنه چکه نمیدونیم خواهی نه خورده او هیچ کسیم از من نپرسید بخونه چه جون رو پرسید و های که پرسید چه رو سرسون رو خودتون بپنید بعد شروع رو میکنه سرگزشتشو برای این کنیز میگه و بعد که پاچهامنی میره این کنیز هم سرگزشت رو برای دوستان نهار میکنه و به دست ما رسیده تا تو این مجلس رو اینجان نهار شد تحلیل تحلیلی از نظر اینکه این نسود چیه؟ از این چیه؟ بسیار بسیار داستان جالب است، خوب هم از نظر لفظ هم از نظر نه, نه. داستان در جدو است و از اول ترم جاهرم بسیده از اوغیل سپتامبر و الان ما سرگرم اون قصه میدیم اون تموم چون حالان آشار یه قصه دیگری رو از اون قصه های از اون هفته قصه که در هفته ایتره هست برار است که ترک کنیم و بحث کنیم و به نظر بنده میاد که قصه گونبد سرخ از اون چهارشنبه و علتش این است که این قصه گونبد سرخ بعد این نفاس پید در کتابای دیگه اونا و بعد شیلر اینو به شعر در آورده بود یه اوپراس ازش ساخته شد و خیلی خیلی این نفاس مفصلی در فرهنگ ترب و فرهنگستون رو اینا پیدو کرده قصه خیلی خیلی محروب شده قصه هم از اینه که یعنی اساس قصه عبارد از اینه که همون که قدیم جنگ پهلوانی و آزمایش زیدور بازدور وجود داشته به که اهل میدان و بودن یه جنگ روشن فکری هم بوده که نمونه هاستی سانانت ازدهسی و جاهای دیگه هست که مثلا یه پاسچاهی که خراش باج میدهد این ها و ما همه هایی مثل برای همون کسی که باج میگرفته و ما این سوالات رو داریم این سوالات رو جواب بدیم ما باج میدیم. اگه نه که شما، شما باید به ما باج می‌دیم از جمله مثلا، حسه‌ی که در شاهنامه هست، حسه شطنج رو نرده که می‌گه شطنج رو هندی‌ها اختراع کردن و فرستادن، گفتن که اونو کن. باجی کنم کنیم، باج می‌دیم، شهای ایران ازشون مختبرین بدیم، این کسی اگه می‌تونه که کشف کنه که بازیش چیه، چطور بعد ما باج بدیم، ازنه که نجم میان و می هیچ که این کار رو انجام بده، بزرگ مهرم هنوشی رفان بهش کشم میگرفتون در زندان، هم ایران با عزت و اعترام میگرن چو میاده میشینه و کشم چه؟ چه و بازی میکنه بازی رو به جونی رو وازی میکنه، قوالش در میره بعد او نرد رو اخترام کنه و میگه که حالا شما این رو ببریم که عربا بهتون، که حالا این رو بیادیم البته اینا از فلسفی هم دوتا بعض تاییلی مختلف دارم در شد غنج، کاملا متضابیه و فقط عقله که حاکمه یعنی هرکی بهتر بازی کنه دو طرف هم دستگاه همیگره میبینه و از طرف میبینه و این طرف این هرکی بهتر بازی کنه و بهتر دوزیات غذابه رو به سنجه میبره در در نرد پنجا درصد بازی خوبه پنجا درصد هم تصادق خود یعنی حیثن که چه و در حقیقت اونا پستخشون این بوده که با عقل و تدبیر اونا همه کارا رو میشه حل کرد و بزرگونه که نردو درست میکنه میگه که نه عقل و تدبیر اونجای خودش درست هم هست هم هست ولی یک کرده شد و دوزهار و و مسائل این دنیا هم, هم ه برحال بات نگه هندیه ها طبعا چون ایرمی قصه رو نوشته هندیه ها نتونستن و بعد آجز موندن و باج و قبول کردن و ایرمی ها دوستن این واضیه بوده توی این قصه یکی از همین مسائل مزده بوده یه شاهزاد خانم نیست که خیلی زیبا بوده شدی هم واقع شد دانشگار و فرگفته پر و پرگفتی بوده پاسداران نسیار زیاد و میلی رقبتی به شوهر کردن نداشت به پدرش میگه که من یه قصر دوست ازم کالای فوز زیر نظر بکنم. اگر کسی مانتون قصر کنست راه قصر کنید یاد یکی از شرایطمان یکی رویتونو بیرد بیاد بعد من یه سوالات میکنم، یه سوالات جواب داد شوهر من قبول دارم، اگر نه، نه و برای اینکه هر کسی حوست نکنه و هر آدم مجهولی بلند نشه رابی گفته بود که اگر هم کسانی باشند که بیان با نتونند سرشون این که کنگو از آویزم مجازات هم پشت. این است که یکی این است که به این ترتیب تعداد خواستدار ها کم شد ولی می و میرفتن و گرفتاری بود و طبیعی سی در این ها قهرمان که باید و بیاد از این مشکل و این داستان گومده سرخ داستان این مشکل است، و داستان این ترتیبات است، و قصه خیلی حالا می خونیم اونجا ما دو تا چیز داشتیم به تا از دوستان بودن که ولی میخوندن راوی بودن، نیستن ایش خودم رفتن و یک آقای موخ بود و یک آقای سخند شاهر، هر دوشون و اهل عدب بود بارها هم منده خواستن از این کلاس بیرونشون کنن بخونم، ما شما جمعین چه کنیم، نیچیز یاد نمیگیریم که اینا، این رو دوما باشیم، تو این کار کنیم، کنیم ولی بخونم، ما باید بیاییم، میاییم، بلا س این روز سه‌شنبه متعلق به ستاره مریخ هست که من مریخ رو هم باید صورت ثناوری قمبرم قمبد سور و مریخ متعلق به اقلیم چهارم این دکتر درت قرصا این تو آرون ما حالا بنده کردن نمی‌خونم جای نیست که قرارم صدیه که قصه رو بخونیم، تمام شدید. شهرو و تفسیر برای اینکه وقتش ندید. دو تا جلسه دید، اینکه اون جلسه، اون جلسه، جلسه، بعد یک ماه نهی درست و برسی تمام میشه و نمارکست کنم، بسان جلسه، اینجا دید. مواقعاً سکونت اینجا واقعاً خیلی سا. ارز کنند این است که وقت شرف و تفسیر رو اینا میخونیم دوستانم انشالله که این حد عادت کردن همه بله که با خوندن از یه حالیشون بشه نشکالی نداشته بشه و اگه وقتی لغتی چیزی بود اونو خود برمی توزید با ایتیاجی روزید که روزی از گوزهای دیماهی چون شب تیرمه به کتاهی از دیگر روز هفته آن بهدور ناف هفته مگر سشنگه سشنگه ناف هفته است که هفت روز سویشون برای سویشون برای تون برای روز بحرام و رنگ بحرامی اسم فارسی مزید سهرام روز بحرام این روز مزید رنگ بحرامی اون رنگ تور روز بحرام و رنگ محرامی شاه با هر دو کرده هم نامی سرخ در سرخ زیوری برساخت سرخ گهس توی سرخ قنبت برساخت بانوی سرخ رنگ سقلابی سقلاب معرب کلمه اسلابی بانو اروسیده اروسی بود بانوی سرخ رنگ سقلابی آن به رنگ آفتشی، به لط به پرستاویش میان در بست، خوش قوت، ماه آفتاب هست قبلا این توضیح کچه که هیچ وقت نهدم براتون بهتره بدم که همیشه دو کتاب درسی ما نوشتم برام و دیر و به دلیل اینکه به شکال دور خر حتما شوان کلاسه اصدهی همینه خونده فهمه که چون بشه کار گور خرمه داشت، نیگه زیاد داشت، اینه معروف تو بهرام بود نظامی همین هم این درست نیست در شاهنامه فردوسی گیت هایی هست که مثلا میگه که چون فراوان مثلا بود میلش به گور، او را خاندن بهرام این اینکه نمیشه که گور دو طرف ونی هون، گور خرداشه شعر قافیه نداره شواهد زیادی نزید. گور به معنی بزرگی بهرام گور یعنی بهرام کبیر بله حاضر شکار گورم میکرد به ولی بحران گور یعنی بهرام کبیر و یه آقایی به نام آقای اخوان زنجانی جلیل اخوان زنجانی این مقاله نمشه در همین شماله های اخیر مجلی ایران شمسیر اما تو این توضیح رو دادیم تمام اون شواهد آوردهی که به چه دلیل این گور رانیر گوره خرمیست و اگه باشه شعر فردوسی غلط میشه بعدم گفته که گورم معنیش اینه اتیمولوژی و ریچه و همین با هم آورده و گفته بهرام گور یعنی بهرام وزرگ اینه گفتم خواستم براتون تون بگم که چیز نشید با اونوی سرخ آن به رنگ آفشی به لطفاوی به نیان در بعد خوش با ماه آفتاب آفتا خرار. شب چون منجوخ برکشیم بلند منجوخ که آن بعد ما به صورت منجوخ علامه کنیم بریم والا یک شبی به بعضی علامای حلال ماه هستش علمای که نگم این اون حلال و ماه چه علام منجوخ یعنی ماه چه علم ماه دلست در بلال با شب هم تناسق بید اینی وقتی شب منجوبشو بلند کرد اینی کانم تایید شد شب چون منجوب برکشید بلند تاغ خورشید را در این پرند شاه از اون سرخسی به شهدامیست خواست افسامه نازنین سر نتاخت از راویش در فشند از اخیر در پاویش که این اول چنان که رست می کنید داستانه مومدسی هم اولش اون قانون دعا میکنه کنه به پادشا مرسوم بوده که این فلک آستان درگاه تو برس خورشید ماه خرگاه تو برتر از هر دوری که بتوان گفت بهتر از هر سخن که بیتوان گفت کس به گردر چسید نتاند, نتاند. چون دعایی چنین پایان برد لعلکان را به کان للز گفت اینجا چند داره دختر پا داستان دختر پاچا که در قلعه حصاری شده گفت از جمله ولایت روس بود شهری به نیزیی چو عروض در او امارت ساز دختری داشت پروریده به ناز دل بی به قمزه جادوبه گل روخی قامتش تو سر ببلند. روح به بلند به خوبیز ماه دلکشتر لب به شیرینی از شکر خوشتر زهرهی دلز مشتری برده شکر و شم پیش اون مرده تنگ شکر تنگ بانی بار تنگ شکرز تنگیش شکرش این شکر تنگی شکر محشوق هم اینه تنگی گمان به لبشینه تنگ شکرز تنگی شکرش شکر تنگی شکر تنگی تنگ دلپرز شکر حلقه کمرش مشک با ظلف او جگر خاری گل ز ریحان باقه او خاری قدی افراسش و سر به روی افروخته تو شنفچران تازه رویش تازه ترز بهاد خوب رنگیش خوب طرز نگار خواب نرگس کمار دیده یه ناز نسرین گرم قریده یه آوگوگل خاک آو رهبر از داخش گل کمربند زید دستان به جز از خوبی و شکرخندی میگه خانم علا به جز از خوبی و شکرخندی داشت پیراوه‌ی هنرمندی دانش آموخته در هر نسقی در نوشته ز حرفنی و رقی خوانده نیرنگ نامهای جهان جادویی ها, ها و نهان در کشیده نقاب زول بر روی سر کشیده ز بارنامه شو بارنامه رو کردن و تحکم کردن و فرمون کردن و بارنامه شوهر یعنی با خانم نیگه خانم, خانم, خانم شوره یک با کار تحکم در کشید نقاب سر در کشید بارنامه شون آنکه در دنگ خیش پا بود سوی جفتش که اتفاق بغض. چون شد در جهان مشهور که آمد است از بهشت رزبان پور ماه خورشید بچه زاده است زهره شیر اتاره دشتاده است رغبت هر کسی بدون شد گرم آمد از هر سوی شفاعت این به زور آن به زر همید مو خود به زور می ول بازند خ از جست بران نامبران کانسنم را رضضادید در آن گشت آجزز که چاره چون سازد نرد با صد چون بازد. دختر خورو خلوت ساز دست به خواهندگان شدی دراز جست کوهی در آن بلند. دور چون دور را فنس داد کردن بر او حساری چوست گفتی از مغز تو خوبی رو توزه شنگی و پدر در خواست برگ راه رفتن را معذرت ماست از من میرم تو اون قلب روست. پدر مهربان از آن دوری گرچه رنجی داد دستویی این اجازه که با که رزانه بود برای اجازه دارم تا شهر شهدش ده گرد گردد دور در نیاید زبا در زنبون بیگه این اصل که از خونه اف بیرون دیگه زنبور اینجا زیاد تراغون نمیاند یعنی از شر حافظگار ها راحت بشید نیست چون در حسار باشد گنج پاسپان راز دوز ناید رنج بان عروس حساری از سر ناز کرد کار حسار هیچ به ساز چون بدان محکمی حساری بست رفت و چون گنج در حساری شد سینتان چون در استواری شد نام او بامی حسابی شد دزد گنج از حسار او آجز کاغنین قلعه بود چون روینگز روینگز اسم قلعهی شدر دارتان رستم هستان میاد مالا ارجاس به پیوانی بوده که دفترهای گوشتاس یعنی خوهرهای اسفندی گرفته بوده برده بوده در رونده، در فرم کرده بوده و این دش یه حصار ملادی بوده رو این رو یعنی هم قلیبی و اسفندی میره این حصار رو که تقریبا دسترس رس نافذیر بوده فت بکنه و خوهراش مجاد این اشاره به اون بسته دزد گنج از حسار او آجز تا قلعه بود تو رو دز در آن دز چو باموی سقلا پیچ دزبانو آن ندید بخار. راه بر بست راهداران را دوخته کام کامداران را در همه کاریان هنر پیشه چارگر بود و چاوگن گندیشه انجام چرخ را مزاد شنا تبعه ها را به هم گرفته بیاد بر تبایه تمام یافته دست راز روحانی آوریده بشد که در هر خشک و تر چه شاید کرد چون شود آب گرم و آتش سر مردمان را چه میکند مردم و انجامن را چه می دهد انجام هر چه فرهنگ را پتا را یابد را به همه آورده بود زیر نورد آن به صورت زن و به معنی مرد چون شکی بنده شد در آن باره دلز باره این همون بارود هم بلده. چون شکی بنده شد در آن باره دلز مردم گرید یک باره پس در راه آن حصار بلند از زندگی زندکی تلس میچند تلس مثلا رنی صورت و نقش آدمیزاری اصلا تو رو نکمیدن که می اینا رو بفرنگیشن پلیسمان یا یعنی تلس اون نعچه او تلس اصلا باقت یونانی بحث راه آن حصار بلند از سر زندکی تلس میچند پیکر هر تلس از آهن و سنگ هر یکی ای گرفته چند دهره این داست. داست که باش گندان بیرون. هر که رفتی به گذرگه بیم گشتی از زخم تیغ ها به دونی تون را پامزشده این صورت های تلسونی حرکت بیکردن و با میزدند میزدن می جز یکی تو رقیب آن به آن این و نگردان یه نفر میگیم تلسونی و اصراع رو که درسات و کاربار و مایتاشی برای اینطور دوز یکی که آن رقیب آن دز بود هر آن راه رفت آجز بود آن رقیبی که بود محرم کار راه نرفتی مگر به گام شما چون نظامی یکی گیدی برای بروش آیش این به دست میده یکی او قدم شد با حساب و کتاب میذار و که بود محرم کار ره نرفتیم مگر به گام شمار گر یکی پی غلط شدی زستدش افتادی سرش به بال بده از طلس به دور رسیدی تیغ ماه و عمرش نهان شدی در می. در آن باره کاسمانی بود چون در آخمان نهانی این، این خوان دوبار اولا این شد برند و این که لسما سر راه بگن و افراد زحمت می شدن بعدم حالا این اون در بالاخره اینا رو رد می کرد حالا این حسار در ندارد درش پنهان بود در آنبار بارک آسمانی بود چون در آسمان نهانی بود گردویدی مهندسی یک ماه آقای مهندس هم توجه در دویدی مهندسی یک ماه بردرش برترش چون فلک نبودی را آن فریفیکر حسار نشید بود نقاش کارخانه چین چون قلم را به نقش پیوستی آب را چون صدف گرفت صدف معروفه که مرواری درست میکنید و میدونید که قدما معتقدند که موروارید بارون نیسانه که میچه که بله صدف و تحصیل موروارید یعنی آب رو گره می کنید تبسیل می کنید این نقاشو چی به دستی بود که پس آب رو پس آب رو گره چون قلم را به نقش پی بستی آب را چون صرف گره بستی از که قلم تو طره هور ساگه نقش برزدی از نور چون در آن برج بندی یاف برگ ازان ما بحر یاف خامه برداش پای تا سر پیش بر پرندی نگاش پیکر فیش یا ما اینی جنس این جنس اینم راشه هرکی کی بسم الله خامه برداشت پای تا سر فیش بر پرندی نگاش پیکر پیش بر سر صورت پرند سرش به خطی هرچی خوبتر بنوشت که از جهان هر کرا هوای است با چنین قلعی. که جای من است دوچ و پروانه برد نزاغه نور های درنه سخن مگونی از دین یه هستی نخواد بسم الله بیاد بر چنین قلعه مرد یافت بار نیست نامرد را در این دست کار هر کرا این نگار می باید نه یکی جان هزار. همتش سوی راه باید داشت چار شرطش نگاه ده تو شرط شرط اول در این زناشوی نیکنامی شده است و نیکویی شرط آنکه از رای گردد این راه را تلعصم گشه سر بومین شرط آنکه از پیوند چون گشه آید ها را در این دوز نشان دهد کدام تازه در جفته من چود نزد با چارمین شرط اگر به جای آرد رهسوی شهر میره پای تا من آیم به بارگاه به در پرسم از وی حدیت های اونه گر جوابم دهد چنان که سزاست که هم او را چنان که شرط وقا شوق من باشدم آن گرام مرد کانچه گفتم تمام دانت کرد دانستن منی که بان که زین بگذرد بان که زین شهر بگذرد تن او خون بی شرط او به گردن او هر که می شد رانه تو گارد کیمیای او دارد. بان که پی بر سخن نداند برد گر است زود گردد خوب چون ز ترتیب آن ورق فردا پیش آن که احل بود انداخ گفت برخی این ورق بردار این طبق این طبق از این طبق بردار بردر شهر شد به جای بلند این برق را به تاج درد درد تازه شهری و لشگری هر کس چف بر چمن عروم سوست به چنین شهر راه برگیرد یا شود میر قلعه یا میرد شد پرستنده بردر برق برداشت کیج بر کیج راه را بگذاشت بردر شهر بست که ما تا دارو آشغال کردن می‌گردم. هر که راه را بتواند خیزد، خون خود را به دست خود بده. چون به هر تختگیر و تاجباری، زین حفایت رسیده شد خبری بر تمنای آن حدیث گذاف سر نهادن مردم از آن. هر کس از گرمی جوانی خیش داد بر باز زندگانی. خیش. هر که در راه او نهادی گشتی از زخم تیغ هیچ کوچندهی به چاره و رای نشدان بل اراخلست کشا من که لختی نمود چارگری هم فسونش به چاره شد سفری درچه به چادزان کلس چند بر دگرها نگشت میرومند از سر بی خودی و بی در سر کار شد بروس در سر شد سر کار این مرادی که از اون شد چند مرنای خوب در سر شد چندین این جفون اومدن و کسی کسی از آن ره خلاس دیده نبود همه ره جز سر نبود هر سری که از سران به در شهر برکشیدنگی تازه بست سر که شد بریده به قر کله بر کله بست شد بر شهر گردگیتی چو بنگری همه جای نبود جز به سور شهرارای سور در عربی در پارسی معنی در عربی سور و هم سیب امید دیوار؟ دیگه شهری به دیوارش آرایش درد و شهر سادره دیگه ولی این پریزه شهری رو آراسته بود به سر نبی حالا الان میخونم درد گردگیتی چو بنگری همی جای نبود جز به سور شهر آراست وان پری روخ شد ستیزه هور شهری آراسته به سر نبی سوی. نارسیده به سایه در او، ای بس ها رفت در سر این. از بزرگان پاد، اینجا حالا قهرمان اصلی پامیزاره از بزرگان زاده بود، زیبا جوانی آزاده زیدک و زونگوند و خوب و دلیر سید شمشید او چه گود و چه شیر از شهر شد به شکار. تا شکخته شود شد تازه بهار دید یک نوشنامه بردر شهر نوش به عنی شیرینیه قبلن هم هست کردم هست کردم شیرین زن خوشت و پلیدم ارمنی های شیرین هست هانی شیرین دید یک نوشنامه بردر شهر گرد اون صد هداف شنشه زهر یه یه نوش اینجا داده اما شنشه های زهر های بریده پیکری بسته ور سراد پرند پیکری دلفری و دیده پسند صورتی که از جمال و زیبایی برد از او در زمان شکیبایی آفرین گفت بر چنان قلمی خاید از نوکش آنچنان رغمی گردان صورت جهان آرای سد سر, صد سر, صد سر گفت از این گوهر نهنگاویست چون گوریزم؟ که نیست جا گوریزم؟ گوهر کسان که دریا گوهر بیارن جای هم؟ ایسه ولی جوان دلش هفته بوده میگه درسته که اونجا مهنگ برسون ولی من جای گوریزم؟ پای من؟ هیچ نگرده زین حوثنامه گر به دارم دست آورد آورد در تنم شکی شکست گرد بلمز این به در نشود سر شود این حوست به سر نشود برطرن در چه صورتی زیباست مار با گنج و کار با خورمان این همه سر بریده شد باری کاشکی هم به سر شدی کار این همه سر بریده کاشکی لاقل این کار سر انجام پیده سر من نیز رفته سو. خاکی گشته گیر خاک گر نز این رشته باز دارم دست سر بر این رشته باز باید دست. گر دلیری کنم به جان صفتن چون توانم به ترک جان گفتن با خودش داره حق میزنه که خب برم نرم منم حالا گیرم که سر منم رفت چه تأثیری داره ورد نمی خب نمیتونم اینکه برم باز گفت این پرند را پریان بستند از برای مشتریان این اعلان زبیقت مشتگی بیده و همه مشتگی از اون به پرند باز گفت این پرند را پریان بستند از برای مشتریان پیش افسون آن. چنان پری نتوان رفت بی گری خیلی یعنی پری افسونگره و مشتری میرخواد اما پری افسونگره و سن Buddhist بدنیم افسون گری من اول و در اون یاد بعد. پیش افسون یاد میکنم. پس افسون آنچنان تری نه توان را بیکوسون گری. تا زبان بند آن پرید نکنم. سر در این کار سرسری نکنم. چارهای ای ایدم نخور. بزرگ، حرهات کوستان دم دندور. هر که در کار سخت گیر شود نظم کارش خلال فزیش شود در تصرف مواش خوردن بیش تازیان بزرگ نایتی ساز بر پرده جهان می ساز سوست میگیر و سخت می انداز دلم از خاطرم خرابتر است جگرم از دلم کبابتر است به چنین دل چگونه باشم شاه؟ و چنین خاکهی چه یاد این سخن گفت و لختی اندخ و خرد و از نفس برکشید با سر آب در دیده بزان نزار گذشت نه با تیر دید و سر و تشت تشت هم این حوث را چنان که بود نهو با کس اندیشهی که بود ندهد <تصفح> روز شب بود با دلی پرسور شبش شب بود و نرون کشد هر سهرگه و آرزوی تمام تا در شهر ورگرد ایگرام دیدی آن پیکر نوعین را گوغل فرهاد و غصر شیدین را آن گره را به صد هزار کلی جست و سررشدهی نگرد رشدهی دید صد هزارش سر و سر رشته کس نداخت قبر گرچه بسیار طاقت از پس و پیش نگوش آدان گره درشته بر کناره نه. در جستجوی چاره نهار چاره سازی به هر طرف جست که از او بند سخت گردد تا خبر یاخت از هنرمن بند فرشته یونی در همه توسنی کشیده لگام به همه داغشی رسیده تمام همه همدستی اوفتادهٔ او ای بود. همه در بستهای گشادهٔ او چون جوانمرد از آن جهان هنر از جهان دیدگان چنین خبر پیش سیمرغ آفتاب شکوه شد چون مرغ پرنده کون رب سراغ بابای که گفتن اگر کسی کاره کاره بگیمه گل افتر یافتش این دانشمند یافتش چون چه گفته گلزار در کجا در خراب در قاری زد به فطران که او چون سوطند دست خدمتش را چون گل میان در بر از طرف فروخی و فیروزی کرد از آن خزر دانش آبوزی چون از آن چشم بحر یافت بسید برزد از راز خیشدن بعد که خوب مزاج باباره به دست آورد و موافقت جلب کرد و بحرمند رو از دانشش بعد گفت که من یه چین گرفتایی زان پری روی آن حصار بلر وان که زو خرق را رسید گزن. وان کل که بست بر ره پیش وان فکندن هزاف سر در پیش در پی... پشت پیلچه تیلسوف کهن گفت و تنوان ندار تیلسوف هن تیلسوف از حساب های هرچه در خورد بود با او گفت اینجا نظامی نمیگی که تیلسوف رو چه زیده در وقت میگه راه کار بعد محیط رو میره اونجا که به اصلاف دلتون بشکنه عملیاتی که این بابا یادش شده بوده اونجا شرد بوده اونجا نید فیلسوف از حساب های نهفت هرچه در خورت بود با او گفت چون شدن چار جو چارش با باز پس با هزار سپار روزکی چند چون گرفت قرار کرد با خویشتن سگارش کار زالت راه آن آلت زالت یعنی از آلت زالت راه آن گریبه فر هرچه بایستش آوری چند نسبتی باز دوست روحانی کارت از سختیش داستانی آنچنان که از قیاس او برخاست کرد پتی برسل سی اول از آن طلبتاری خواست از تیزه مطان یاوی که از مردان عالم اول حمت اول یاری نفس مساعد کنید، را برخ کنید، این خود نهست، این رسم را لابد نمی کنید که حافظ که گفتیم، که شدیم در ویدی، تا از این جامعه در خوناب پشتیم که فلک رهنوانی این رفای علم دار نگرد، در که نیروها صف را دیگه ولی در حقیقت هم یه لافرد میغالانم که همین ضمن سجلوه اینکه عقبش اعلام شده است یه سری جوری نگن داشتن شکایت داشتن و اینو سر رنگ می‌داد رنگ تجاوز و رنگ زورگویی میده رنگ خون این معلوم بود که این شفا و این راست جاری بود متصفا به همین دلیل دیگه که شاهزادهام جاماشو تحر کرد اتفاقا رنگ اثار هم جامعه را سرخ کرد این خون این باین تزلم ز جوغ گردون چون به دریای خون درآمد زود جامه چون دیده کرد خونآلود آرزوی خود از میان برداشتت بانگ تشنی از جهان برداشت گفت رنج از برای خود نبرد بلکه خونخواه صد هزار سر است یاز سرها یا یعنی این چمبر یا سر خویشتن کنم دستم چون بدین شغل جامعه در خون زد تیغ برداشت خیمه بیرون زد هر که شغل یافت آگاهی کامدان آمدان دل به خون خواهی همت کاغگر به تا درمست در من در حیقت میخوان این ظلمو و این بدبختی رو بردارم که هر جوونی که خورشو ترین و پهترین میدونه بیاد نیجا می و سرشون رو بارد بده من میکنم بساعت رو جعب فقط برای خودم نیست کنش بارد بعد میگه همه کسانی سانی که صده میرسیده بودن و ناراحت بودن و همتی داشتن و نفسی داشتن خورشو داشت کردن و موفقیت چه از خدا خواستن که این شغل یافت آگاهی که آمده اون شیر دل بخون خون خواهی همت کاغر به دان در بست که برانگار زود یا بد در همت خلق و رای روحشن او در اپولا آب گشت خستانه در, در. بر طریق معذوری خاصان شاه و شهر دستی بعد شاه که من قصد این کار دارم فادشان چون جوون جوان خوب با عدد به خوشکی آقای فردیده با دریافت دیده یه آقا پسرم نرو من تو رو دیست دارم نیدونی سر که رواد من ناراحتم از این کار میخواد بازش بزرگید ولی نبید بانگهی بر طریق من از دوری خواست دستوری دستوری گفتم رجازه پس راه آن حساب پیش گرفت به تدبیر کار پیش گرفت. چون به که آن پ رخمه ای کرد و رخیه ای رو هم تر از همین نیرنگ آن تلسم بکن برگجاد آن تلسم را خیدم حالا بعد میگه که چه دید. هر تلسمی که دید بر سر راه همه را چمبر رو پچا چونز کوه آن پلس ها برداشت تیرها را به تیر کوه بذاشت بردر آن حصار شد در حال دو هلی را چشید زیر دبار برای اینکه در پیدا کنه یه تحبی رو شوکر بزردن پشت حصار دیش شکا هم کنید؟ در دوزن جایی که بیوار بره، این حساس صدا که چند، جایی که توشش خالیه دامدام میگن صدا شمال می‌چون جیده هست. <تصح> چون زفتون بردر آن حسار شد در حال، دو هلی را کشید زیر دوال، با آن صدا را به گرده با رو جست چند، چون جای چنده بود دروش، بس اون جای به صلاح خالیه رسید اونجا رو کند چون صدا رخمه را کلید آمد از سر رخنه در پدید آمد زین حکایت تویاخت آگاهی خانون خبر شد از آقای مده والا در تلید زین حکایت تویاخت آگاهی که از فرستاد ماه خرگاهی گفت که ای رخمه بند را کشای دولتت بر مرات را نماید. چون گشادی تلس راز نخست گره گنگیل یافتی به درست سرسوی شهر کن چه آب روان سابری کن دروزگر به دوان تا من آیم به شهر پیش پدر آزمایش کنم تو را آفت مونم مراهل برد از تو چهار چیز نهفت گر نهفت جواب دانی گفت لاتا هم دوستی یه شود شغل فیمن دیبه ها نشود. میکن دو اگر جواب دادی مرد چون دید کام خیش روی پس کرد وره گرفت به پیش چون به شهر آمد از حسابار بلند از در شهر برید وقتی پایین اومد از که کرد تصمیر خانم از در بر به همون صورتی که چون به شهر آمد از حسار بولان از در شهر برکشید نوشت و به چاکری به آفرین زندگیش و آفت نمود هزار درود مطره آورد و برکشید شهریان بر سرش نساغ رفشان همه با مدرش نگاه همه خوردن یک به یک سوگن که اگر شهر این تیمند شاه را در زمان تباه کنید. بر خود او را همید و شاهدید سر ما برید و سردی کرد این سر ما رهاند و مردی کرد و دگرسو عروس زیباروی شادمان شد به چون شب از نافه هاوی مشک سیاه خواهی بر اماری ماه در اماری نشست با دل خش ماه در موقعش اماری کش توی کاخ آمد از گریبه کوه کاخ از او یافت چون شکوفه شکوه ساعت چنده؟ نه رسیدیم اونجا که بانو از حسار آمد پایین و رفتش باباش در اماری نشست با دل خش ماه در موقعش اماری کش سوی کاخ آمد از گریده بو کاخ از او یاخ چون شکوفه شک پدر از دیدنش چ گل دختر احوال فیش از او ننهو هرچه پیش آمدش زنی پوزه بد کرد با او همه حفایت کرد زان سواران که از او پیاده شدن کندند و در پتابه شدن زان حجبران که نام او بردن و سر عجز پیش او مردن تا بدان جا که آن ملکزاده بود یک بار دل بدون دوداده بان که آمد چکوه پای پشد کرد یک یک تلزمها را خورد بان که برقل اکامگاری و سر شرط رفته روی نتا چون سه شرط از چهار شرط نمود تا چهارم چه دونه خواهد آمده برای شرط دلدان. شاه تا که شرط چارم چیست شرط خوبان یکی کنه نبیست نوشلب گفت چار مشکل سخت پرسم از بی به رهنمانی بر گر بدون مشکلم هم شود تاج بر کاروکش نهاده شود ورد در این ره خرش پرو ماند خرگه هنجا زند که او داند واجبان شد که بامداد با پگاه بر سر تخت خود نشیند شاه خانه او را به شرط مهمامی من شوم زیگ فرده پنهامی پرسم او را سؤال سر بسته تا جوابان فرستد آبسته شاه گفتا چنین کنی؟ رواست هرچه آن کرده تو کرده ما بیگشتر سخن نیفزیدن در شبستان شدند و آفوزند دامدادان که چرخ مینارنگ گرده گرد گرده گرد به سنگ مجلس آراد شهر به کیان بحث بربندگیش بخت میان انجمن ساخت نامداران را راستگویان را و راستگاران را خان چهزاده را به مهمانی بر سرش کرد گوهرفشامی خان زرین نهاده شد در کاف تنگ شد باگه به برگ فرا. برگ یعنی وسائل نهانی به اینقدر وسائل نهانی نفسر بود فردی به این بود که بارگاه تنگ خان زرین نهاده شد در کاخ تنگ شد با گهت برگ خراف از بسی آرزو که بر خان بود آن نخان بود کارزودان بود از خورش ها که بود بر چپ و راست هر کسان خورد کارزود در خواهد چون خورش خورده شد و اندازه شد طبیعت به فرورش تازه شاه فرمود تا به مجلس خاص بر محک زنند زنن ذر خلاص ذر خلاص نظر خالص. خود در اون رفت و جای خیش بمان میهمان را به جای خیش نشان پیش دختر نشست روی به تا چه بازی گریم کند با سون. بازی آمون لعبتان فراز یعنی همون دختر خانوم از پس پرده گشت لعبت باز. از بناگوش خود دو لعلوه خورد برگشاد و به خواهره به خود به مهمان ما رسان به شتاب چون رسانیده شد بیار جواب مرد شد فرستاده پیش مهمان زود و این آورده بود به دور برمون مرد لولوی خورد برسنجید اپره کردش اپره نمو کرد یعنی گذروند از نظرش چنان که در گنجید زان جواهر که بود در خوره آن سه دیگر نها بزقره آن دو تا مرواری به بچلو در آور پانون به رستات میشه آقا آقا مرواریده زیر رو زیرور کرده انزش بید و ست انزش بوده شوشت پس. در اون که بود در خور آن سه دیگر نهاد بر سر آن هم بدان پهی که نام بردادش توی آن نام بردرست دادش سنگ دل چون که دید لولو لو پنج سنگ برداشت گشت لولو لو سنج چون کم و بیش دیدشان و ایار هم بدان سنگ سودشان چو خوبار پنج داد مروارید و با سنگ ساوی پود کرد گردشان تابذواری شکر میخواستن شکر بدن یعنی این پی دسته شمش اینا برام وان دور آن شکر به یک جا سود داد نزد میهن بشه تا میهن باز را دریا از پرستنده خواه جام شیر هر دو در بهی پشان گفت بگید. شد پرستنده نزد بانوی خیشت وان رهاورت را این اون جانشیر که اینا رو روشت و دوشت بانو اون شیر برگرفت و بخرد وان چه درون منده بود بکند. بکن برکشیدش به وزن اول بار یک سرمون کم نکرد آیاد حالی انگوشتری گوشات است. داد تا برد پیک راه است. مرد به خط دست کنیز پس در انگشت کرد و داشت عزیز داد یک تا دوری جهان حس چپ چپ چراغ میبروچنهای رود با شد کنیز روح نژاد دور یک تا به لعل یک تا دار. بانو آن دور نهاد بر کف دست اقت خود را یک کنیز اقدر خود رازه یک دیگر بگسه از تا دوری یافت هم طویله یه آن این طویله لغت خیلی بد وقتی شد طویله معنی رشته است که جواهر داره شد طویل دیگه طویل طویل رشته جواهر قطار خر و شطرم قطاری که تناب پستر هم میبندم میگم طویله درازه بعد ها اسم این قطار به اسم اون جایی که اینا میرن اطلاح شده طویله شده مکان اون در حالی که اصلاً طویله گفتم چیز بند جردنبند، بند بند، توهر در اون میکنن و یه مشخرین‌ها رو کستن هم قطار همون قطار که میگم قطار یعنی طویله دیگه بعد طویله شده چه؟ طویل دو هم طویله‌یان یعنی همه اهم بود که اگه می‌خواهد برشته بر این دوتا رو پلو هم میگشم بانوان دور نهاد بر کف دست به خود را یک یکدیگر بگست تا دوری یافت هم تبیله شب شبچراخی هم از قبیله آن هر دو در رشتهی کشید به هم این و آن چون یکی نبیشو نکم شد پرستنده دور به دریا داد بلکه خورشید را یاد داد چون که بخرت نظر بران انداخت آن دو هم را هم مشنا جز دویی در میان در خوشاب هیچ فرقی نبود به رومه و آب دیگه تفاوت شنیم بود که اینا تا بودن یکی نبود لا هیچ فرق دیگه نداشتن این اگر که یک شو نشتی ایش کس نتونستی که این کدومه این اون بریه که خانوم داده یا اون بریه که آقا داده این هم جز دوتا تا بودنش جز دو, دو اینا میام دور خوشا هیچ فرقی نمورد به آب مهره ازرق از قلامان از خواست پان دوم را سه يوم را یه خرموره خاص از علما موره ازرق یعنی خاصه دلن اینو خرموره یه ای خرموره از علاما خواست روشون دو تا دور نهاد مهره خود داد تا آنکه آورید بود مهربانش چون مهره با دور دید مهر بر لب نهاد و خوش خندید ستدان مهره و دور از سر هوشت مهره در دست و دور در گوش. با پدر گفت خیز و کار بسار بس که بر وقت خیش کردم ناز بخت من نید. چگونه یار من است که چنین یاری اختیار من همسری یافتم که همسر او نیست اندر دیار و ما که دانه شدیم و دانا دوست دانش ما به زیر دانه شدیم پدر از لطف آن خش با پری گفت که این فریج آنچه من دیدم از سوال و جواب روی پوشیده بود زیر نقاب که من نفهمیدم شما چودای که هر چه هرچه رفت از حدیث های نهوف یک به ایک پامانت به باید گفت ناز پرورده ی هزار نیاز پرده رمز بر از را. گفت اول که برگرفتم حوش اقده لعلو گوش آدم از بونه در نمودار آن دو لعلو ناب عمر گفتن دو روزه شد دریا او که بر دوسته یه دگر به خوزود گفت اگر پنج بلدر از همجین دو روز که یکی پنج رو یکی زره من که شکر به در درف سودم و دور و آن شکر به هم سودم گفتم این عمر شهوت آلوده چون دور و چون شکر به هم سوده به فسون رو به کیمیا کردن قابل تحجیب خواهم کیمیا به فسون به کیمیا کردن که طوانت به هم جدا کردن؟ او که شیری در آن میان انداخت تا یکی مند و مرباریدامون شکره هم گدافته شد حل شد بید. او که شیری دارم انداختا یکی من و دیگری به گدا گفت شکر که با درامی زد به یکی قطع شیر بردیزد من که خوردم شکر ز ساخر او شیر خاری بودم براخر او من که انگشتری فرست به نکاح خودش رضا یا انگشتری فرست دادم من خازیم کسیم او که دادم گوهر نهانی گفت میگه گرفت یه دون گوهر که او که دادان گوهر نهانی گفت که چو گوهر مرا نیابی جو. من که هم اقده گوهرش بستم با بودم که جفت او هستم او چو در جستجوی آن دو گوهر سیومی در جهان ندید دگر مهره از رقا ورید به دست و از په چشم بد در ایشان داد چون میگم دا چش رفت من که مهر به خود بر آمودم سر سر به مهر رضای او بودند مهر مهر او به سینه من مهر گنج است بر خزینه من بر وی از پنج راز پنهانی پنج نوبت دادم به سلطانی سلاطین بر مواقع گفتم پنج نوبت دادم نوبت دادم در مواقع نماز پنج نماز اونجو ناقاره می‌زدن در در بارگاهشون در مرکز ادارهشون و این کار رو شد نوبت جدن و نشان فادشایی و فرمغوری شاه چون دید توسنی را رام خانوم میگه توسن سرکش بود رام شده رفته خامی به تازیانه خام کرد اطلاع سنت زناشوی هرچه باید در شرط نمی. در شکرریز شور او و نشست دوره را با سوهل کابیل بست بزنیا را چون به ساکدهشت بازگه را به مشک و او سرشت کر پیرایه عروسی راست سر و گل را نشان و خود برخواست دو سبوت روح را به هم بسپرد خیشتن زانیان گرامی برد کانکن لحل چون بسید به جان را مدد رسید زی جان آن جوان بسید به کام ماه را از فلک کشید به دام گاه روح بون صدا گاه لبش گاه نارش گذید به گهر و تبش آخر الماس یا بر دور دست باز بر سینه تزار کشن مهره خیش دید در دستش مهر خود در دوندگس مستش گوهش را به مهر خود نگذاش مهر گوهر گنج او بردار زیست با او به ناز و کامه خیش چون رخش سرخ کرد جامعه خیش که اولین روز بر سکیگی حال سرخی جامعه را گرفت به فال. چون بدان سرخی از سیاهی رست زیبر سرخ داختی که چون به سرخی برات راندندش ملک سرخ جامعه خاندندش سرخی آرایشی نواهین است گوهر سرخ را بها زین است. زرک گوگرد سرخ شد لقبش سرخی آمد مخورد در این سلبش خون که آمیزش روان دارد سرخ از آن شد که لطف جان دارد در کسانی که نیگوی جویی سرخویی است اصل نیگویی سرخ گل شاه بوستان نبود گر سرخی در او نشان نبود چون به پایان شد این حقایت گشت خود سرخ گل هوا را روی بهرام از آن گل افشانی سخت شد چون رحیق رگهانی دست بر سطور پل کشی اتراز در کنارش گرفت و پاق به نازد منشکه اونا به مرادشون دسیدند و هم به مرادشون دسیدند این داستان اون تیکش رو اتفاقاً حالا من نمی دانم کجا بودی شاید که اون نسخه نسرشون جای دیگری هست و ارحال قصه‌ی رفتن بالا از این پله‌ها که می‌گه که پله‌ست داشت که نظامی خیلی به سادگی برگزار می‌کنه و از خانم خوشی رفت بالا می‌گه جای خوندم حالا یادم نیست کجاست می‌گه که شاهزاده وقتی آمد اونجا پله‌ها رو یه شدید در تل کردن و نگاه کردن و دیل که یه پله در میون روی پله های نشانه های توی ریزی مثل په سنجا یه پله هست روی پله دیگه نیست باز روی پله دیگه هست باز فکر کرد که هرچه هست دیر سر این نشانه البته اون پیر هم یه پیر بیا همون دو که پیر اونجا پیر میگه که چی هست بعد این روی پله هایی که اون نشانه ها رو و این درست بوده اون نشانه ها به یه تحقیم وصف بوده به اون صورت ها و اون فلسمات با یه راه هایی با یه ترتیباتی که اگر خالص می دستن و این می آمده حرکت می و با اون راستش می زد و می کشته باباره و چون از روی پله هایی می که نشانه نداشته بنابراین اون فلسم فضلشون بایستدن تا این از اینجا گذشته و رسیده در میدن چاره دارم که عرض کردم که هر بیزد در افراف دیوار چیز و امتحان میکرد که بینه کجا صدا میپیچه و کجا صدا نمیپیچه موجود که خالی بود دانستمون در اون پیلکتر رو باز مسائلش هم که همون حالت معما رو داره که در بسیاری از داستان ها هست اینکه دو تو داستان در شامنامه فردوسی هست باز جای فرستن، مشکلاتی فرستن حتی وقتی که زال میاد و سی مرغ برش میداره میاره پیش پدرش رو وزیه مدرسی میمونه و بعد میخواد بیاد شنگ منوچه ارشاه که اجازه میگیره با روزا و عروسی بکنه بعد منوچه میگه ازش سوالات کنه. بعد از اینکه که هنرهای پهلوانی که دید و اینوان شمسیر زدن و سواری و چوگان وازی و تیر اندازی و این بازی و اماره باید خواست خیرد و عقلش هم امتحان بکنه نشون و سوالات بیده و این سوالات رو زال جواب داد اون وقت رو لایق منصف فهلوانی دانست و بعد هم ازدواج بکنه و جانشین سام هم بشه به عنوان جهان فهلوانی برجت این, این دو سحنه ها یعنی سحنه های انتحان فکی توی قشنهای مختلف هست و گاهگاه های روشت بر میخوریم که یکی از نمونا های بسیار قشنگ بشن بسه نزانی شو هم برسیم. آره ای هره یعنی این سوال چیزی یعنی راه شراب، یعنی شرابی که تذر؟ اسم فارسیش تو رنگ زندر میانی میگن ترنگ و ما در تهرومشون رو قرقا तुर्की अरब تو सॉल्व तो है ये बात ये जो सवाल है حتی بهران شا... نظامی میگه. نظامی در مقام تشبیل میگه این مثل فرهاد می بله خانوم خانوم قبل از چیز بوده بله خب شایر از قولمون میگه حالا ببخشیم بله نه اینا باکه میان تو زبون به این صورت اینا ده یا حالت اون که این از نظر تاریکی اصلا داره که ملوم فرهاد حضورتش یا شیرین بود که علاقه هم هست می که بود اینا شیرین به این صورت که نظامی می کنید که شاهزاده خانم اینا ظاهرن می که نبودید بوده که برلایم وحفیزه یک خستو فرمی کنید بیانی بود. بله و ارمانی ها پیانی هستم ازاد که پیانی اندینی که علام دین هست برای اینکه اونها مسیحی شدن و باوی ایرانی و مسلمان شدن و قبلا زرتشتی بودن این است که اینا یه حالت خیلی ناراحت کننده ای دیدی که از نظر دینی کشش به طرف نجادی روم داشتن بنظر نجادی و ملی و تاریخی کشش به طرف اینا هنوز هم ارمن ارمن میره ارمنستون حرمنیه. حرمنیه به بلتنگ مندکت که تو هم که هوای اینجا هست همین که رفتوری هست ولی اونجوری بوده میگه شیرین هرمانیه هرمانی هم میده به هر حال ایرانیه و ظاهرا زنی بوده که پرویز نمیخواستی بوده یعنی همین هر خواهی یک خواهی و این میگه که فکر کرده که بعدا فردوتی تو وستش که وقتی که پرویز خواست میخوان رو گیره قوبدان و, و اعتراض کرد. و گفتن که شما داریم آبروی و امریکتو میبرید و آبروی سلطنتو میبرید و خراسی یعنی زن قابل این نیست کشمارید بعد توسوف اردیس همین حفاظ رو میکنه و میگه که روزه باید که آنجا میگه یه تشت زرین اینکه روزه تو بودن که کس سپره کستاخته بوده بعد میگه چه؟ میگه این کسید، یک چیزی که چرکه، چرکه، اشاره میکنه قبلا تحکیبه کنه میورن و این تشت زرینه میشودن، کاملا خوب تمیز می‌کنن، خاک می‌کنن، خوش می‌کنن، می‌کنن و اسمه یه لعله، درجه یکی ریزن با آداب و تحکیبی تمام می‌یارن، می‌زنن و سپاسی یکی که حالا این عالی چهانه بیگه خب بیگه من توضیح هم رو داردن محصول شو اگر بدنامی شیرین هم داشت با نظری که من کردن و اون رو, رو زنی گرفتن رو این مساعده تفکش کنار رسی. بعد هم تا که هم فروسی تحیید میکنه و هم نظامی جبتشون ظاهران شیرین هم زنی بوده و بسیار با تعدیر و سیاست مدار و ارز کنم که عاقل و فهمیده هم بسیار شوهردوست و وفادار به شوهرش که که لحظه میمونه و بعد بسر هرگیز از زن بیگر از مریم و دفتر قیسر که چه خسته به زیبایی شیرین بعد از پشتنه پدرش میگه که ولی بله خانم تما لفت کنید سری که یه بچه شیرین میگه خل شما تما سب کنید چند روی داخل بعدم یکی دو تو کار, و دو کار دارم و اینکه رو انجام بدم بسرم درش رفته بوده باسه زنن دیم یکی چهش هر جو چما بودن بیرین در اون مدت تمام خلامت اینجا رو آزاد میتونه و همه ازدواج میکنه حسین در اینه که گوهر و جنویر این ها رو این وقت شده و کاملا چیز میکنم فارق میکنه اصلا تعلقات که داشته بعد می‌دو که من اجازه میخوام که در آخرین بار برم در دخمه شوهران که پشت شده یه دیداری باشده میره اونجا و اونجا می‌گن که بر سر همون نحشه کس کس کس کس کس کس کس کس کس کس کس کس کس کس کس شیدین و هر دوتا منبعی که ازش حد سادن همهش خوب گفتن ازش علا رقم اینکه نشونه هایی هست که خانوم اقلش طوری بوده که مثل اینکه ساحماهل نمیده باید یعنی میکنه و خوبم هم با بب با نه نه خیلی در خانش شوی شو میدین از که آه از که یک تا ششتا تقریبا البته اون چون ماه قمریه یه خونده تفاوت داره یه خونولایی داره عوض کردنش ولی پر نه دونستان هست یه قدری، قدری، یه قدری دیفتری تا زمان شروع چند. والا توجه فرمیم که در این اون جوامع امروزی که هنوز آثارش هنوز هم باقیه ببینید که دین عامل تو غل عاده قبی موده هست نه این کسی خیال کنید که ما این وقتی داریم که که من میکرد یک بابایی میاد تمام هم گرد غبضه میکنه او به من خود میکننه که میبینید پاپ وقتی میاد شما همین جاها حالا تازه اینجا که فروتستان هست ببینید چیه میکنه مثل این وقت او روزگار که یهقدر روزگار تاریک کری افتر فرمون روای مطلق دیم بوده چه اون طرف، چه اون طرف بناباره اینا هیچ کدونه اون طرف اصلا سرجم آدم حساب نمیکرده سعدی مثلا سر حتی نمیدونست که مثلا کیشیش به آخوند مسیحی میگن یا به آخوند یهودی میگن یا به آخوند زربستی میگرد همینقدر مسلمونیست برای گمشه، خموشه هیچ اطلاع نداشتن و هیچ چیز نمید که اون طرف هم همینطور، این طرف هم همینط این که خیلی کم ممکن، اما نظامی به طور کلی در محیطی بوده که اولا مادرش ایلاتی بوده، عشایری بوده و هشایر می‌دونید که یه سری آزادی‌هایی خود، خود زندگیشون اینجا کسی باشید باشن، چادر نداشت و چادر سرشون در این حال، هرزگی و ببخشی، جندگی و اینا اصلا وجود نداره اونجا یعنی زن اونجا به قدری گرفتایی و وقتی داره و به قدری کار سنگین داره مردم همه داره به قدری کار سنگین واسه اصلا مجال این حرفا نداره تنها حادثه که ممکن در زندگی یه زنی پیش داریم که یه دفعه یه نظری به یه جوان دسته باشه. و اگر جوان هم اون نگاه او رو درست پاسه بده با هم ازدواج کنن یا اگه کیساوندان نخواستن مثلا با هم فرار کنن برن, برن،, برن،, برن،, برن،, برن،, برن،, برن. و وقت در نتیجه نظامی مثلا تنها شاعری است که تو آثارش از زیبایی پسرانه حرف زاده است. به هیچ وجه اون فکر معنیش اون نیست که پس هر شاعر بیگو فلان پسر خوشگله معلوم دیتایی که اسمها لغولونه نخیه، درست نیست ولی در جوامع شهری زن یعنی زیبایی زنانه در منظر و مرآ نبوست یک چشم مردم نست. بنابراین شاعری که شیفته زیبایی و حلاغمندری زیباییه و زیبایی رو میخواد وست کنه چیزی جز زیبایی پسران جلوش نیست حالا ممکنه اون کارم باشه ممکنه هاست نباشه من دفاعی از کسی ندارم و نمیگم همه اون سوهرها امام زمی لابدی میدن فیش. اما این دلیل نمیشه که اگر کسی حافظ مثلا میگه گران شیرین پسر خونم بریزد دلا چون ش درسته فرموند غزل روی منظر ده هده پینجه گفتم رواق منظر چشمان آستانه دوست که درست در معروف آشیانه دوسته کرم نما که خانه خانه دوست که غزل عاشقانه تموم حیار به نظر میاد با آدم فکر کنم غزل در محت شاه شجاسته گما نکنم که آفزی جل نظر سوگ مثل تو شاه این است که این, این مسائل یعنی مسائلی اون روزا مطرح بوده که ما امروز درک هم. اما به هر حال نظامی شاید به دلیل اینکه زنای این چادر بعدم درست بگی یک نکته این وسط هست سرف نظر از اون مسائل مربوز به بیومنیتی و او این است که نظامی در مرز دفت جامعه ایران در اذیت هم سوواحل در سیاه و دریا خذر در نیه در اون دروند غاص که دائما مرکز آمده رفت ایرمیا از این بر و رومییا و فرنگی‌ها از اون بر اونده زندگی کرده و زندگی اونجا خیلی فردا شدن با شهری نشاب خیلی خیلی نه زیاد می‌دیدم دیدم فرنگی و و ندان به همین دلیل مثلا خاقانی خودش مادرش مسیحی بوده باید علیت مسلمان شده بوده ولی مادرش مسیحی بوده و خب مسیحی هم مسلمان شد واسه اون مقدسان مذهبی قبلیش که یادش نمیره که حضرتی مساقیمان مریم حضره اوچه اوچه اوچه بنابراین مقادیر زیادی اطلاعات به مسیحیت به دیوان خاقانی هست. خب از سل گفتم رفتم سهدی اصلا نمیرسه آخوند زردشتی یا آخوند یا یا هندی هست واسه هندی ها براحمن میگه کشیشان